عبدالرحمن سیوتی در اللعالی المسنوعه جلد اول صفحه سی و, و ان اتیه قال اتیه نقل کرد مرز رسول المرز اللسی توف بافی پیغمبر در اون بیماری که از دنیا رفتن و کاند اندهو حفصه و آئشه تو اتاقی بود که حفصه و آئشه تو اتاق بودن فقال الله هما ارسلا خلیلی بفرستید به سوی خلیل من فرسلنا و ارسلته الى ابي بكر اونا فرستادن سراغ ابي بکر فجا فسلم و دخل فجلس فلم یکن للنبي صلى الله عليه و الی اضافه میکنم و سلم حاجت ثم مقام و خرج اینا فوری فرستادن سراغ ابوبکر تون که میگم نگران وقتم میخوام سریع لا اقل یه مقداری رو امشب جمع کنم که بتونیم جلو بریم ابوبکر اومد نشسته سلام داد انگار که پیغمبر هیچ کاری با او نداره پاشود رفت دید پیغمبر چیزی بهش نمیگه. سوم من نظر اعلی ما سوم فعاله ارسال اعلام خلیلی سپس پیغمبر نظر به این دوتا کرد فرمود بفرستید به سراغ خلیل من فا ارسال اطلاع امر فجاء فصل دم و داخله ولی میکنن نبی حاضر فقام و خارج امر اومد نشست و سلام داد و انگار پیغمبر هیچ کاری با او نداره دید چیزی نمیگن پاشود رف نظر اعلی ما فعاله ارسل الى خلیلی. البته اینجا با روایت شیعه کمی اختلاف داره روایت شیعه اینه که ام سلمه پا شد گفت چرا پیغمبر رو عذیت میکنید شما نمیدونید خلیل پیغمبر کیه ام سلمه فرستا دنبال امیرالمومنین اما اینجا دیگه نمیگه ام سلمه میگه همین دوتا این بار چیکار کردن اینا فرستادن بله ثم نظر افقال ارسل الى خليلي فارسلته الى علی فجا وسلم اینا فرستادن به سراغ علی علی آمد، فلاب داد، فلما جلسه امرهما فقامتا پیغمبر امر کرد اون دو تا بلند بشن. فقال یا علی ادعو بصحیفه، یا علی اینجا برای من حاضر کن کاغذی و دواتن دوادی، فعملا و كتب علی، پیغمبر املا کرد، علی نوشت و شهد جبرائیل، جبرائیلم شاهد بر این املا و دیکته امیر بود. سمت تویت صحیفه سپس این صحیفه رو پیچیدن فمن حدسکم انعو یعلم ما فی صحیفه الذي املاها او كتبها، او شهدها فلا تصدقوا اینجا اجازه بدید حالا ادامه عدیس به بیان دیگر عرض کنم نویسنده این کتاب در یک دو جا به این مطلب که از کانال شیع نقل شده خورده میگیره من جمله از خردهی که میگیره اینه حالا اگه وقت بشه امشب براتون میخونم علامت گذاشتم از روی کتاب بخونم میگه که این که میگن پیغمبر املا کرد علی نوشت و در صحیفه فاطمه جب ملک اومد املا کرد زهرا به زهرا گفت زهرا املا کرد علی نوشت مگه چقدر کاغذ داشتن اون زمان چقدر میتونستن بنویسن وقت چقدر اجازه میداد آخه وای از فراهم بودن زمینه برای چاپ این حرفا آخه اینسونهای خوشفکر اگه در شب قدر قرآن کریم میفرماید انا انزلناه و فی لیلت القدر در شب قدر یک بار همه حقایق به قلب پیغمبر نازل شد این نزول مثل کلاس درس من و شماست که یه ساعت دو تا روایت رو بیشتر نمیرسیم بحث کنیم یا افاظه است افاظه به یک غمزه که مسئله آموز صد مدرس شد چرا معقولش رو توجه نمی